سخن آخر آینده معنوی ما با هم مزامین این کتاب یوگا، فراوانی و هوش خلاق در صفحات آشکار می شود. اما در پس صحنه واقعیت تاریک تری آشکار شده است. زمانی شروع به نوشتن کردم که هنوز همهگیری جهان را فرا نگرفته بود. و کتاب پس از یک قرانتینه ی طولانی تر از آنچه که هر کسی تصور می کرد به پایان رسید. طبیعی است که مردم در زمانهای سختی و درماندگی به خدا به عنوان منبع آرامش و امید فکر کنند. نیاز ما به حمایت معنوی در یک بحران به شدت افسایش می آبد. این حقیقت است اگرچه امریکایی ها و اروپایی ها برای دهه ها کمتر به فرقه های سازمان یافته وابسته شده اند. مانند یک کت زمستانی که در بهار کنار گذاشته می شود، برای بسیاری از مردم دین پس از گذر از بحران کنار گذاشته می شود. ولی نیاز به معنویت مانند فصلها گذرا نیست. این نیاز جرفتر از آرامش و امید ریشه دارد. این نیازی به خرد است. خرد کلمه ای است که در معرض تردید و انکار است، حتی افرادی که خود را معنوی می دانند، احتمالاً بیشتر در خصوص مسائلی مانند عزت نفس و عشق فکر می کنند. خرد از اهمیت حیاتی برخوردار است و به ما پاسخ می دهد که چرا وجود داریم و هدفمان چیست؟ در یوگا، خرد بینشی از خودآگاهی را ارائه می دهد که همه سنین و شرایط را به هم متصل می کند، خرد در قلب واقعیت به دست می آید. در نهایت جستجوی واقعیت چیزی است که انگیزگ همه افراد را برای احساس کامل بودن پیوند می دهد. کسانی که در واقع برای گوش سپردن به صدای سکوت خیش حقیقی باز می ایستند در هر دوره ای خوششانسترین ها هستند با این حال ذات هستی هیچ کس را هرگز رهان نمی کند. فرقی نمی کند که احساس شعف کنند یا ناامیدی. شاعر رابیند رانات تاگور این موضوع را در شعر زیبایی به وضوح بیان می کند. پایکوبی ذرات قبار در نور همان پایکوبی ماست. از درون به نوای موسیقی گوش نمی سپاریم چه اهمیتی دارد. پایکوبی ادامه دارد و در شادی خورشید، خدا پنهان شده است این گویای امید ابدی است. با این حال اگرچه ذات هستی هیچ کس را رها نمی کند راه رسیدن به معنویت تام و پایدار به سوی خود خرد آن هنگام است که شما به موسیقی درونی به قول تاگور یا به جاذبه مغناطیسی خیش به قول یوگا گوش دهید در حال حاضر، جستجوی خرد از جستجوی معنویت اهمیت بیشتری دارد. از زمانی که آلوز حکسلی عبارت فلسفه جافدان را ابدا کرد، جویندگان در غرب دریافتند که فرقگرائی بسیار محدود و مذاهب آنقدر ارتودکس هستند که نمی توانند حجم عظیمی از خرد را در برگیرند که در طول زمان انباشته شده است. شاشمانداز معنوی که در اطراف ما پدیدار شده است، نسخه بروس شده از فلسفه جاودان است. تصور اینکه شما می امر متعالی را مدرن کنید خنده دار است. این واقعا نوعی ترفند است که نسل به نسل تکرار می شود. شما باید مردم را متقاعد کنید که آگاهی متعال واقعی است. اگر در این خصوص موفق نشدید، سایر تلاش ها عبس و بیهوده است. در کنار معنویت، گاهی دین سازمان یافته و در خدمت نیروهای اجتماعی نسخه ای متعصبانه از مذهب ارائه می دهد. با این حال، نمی توان اشتیاغ معنوی را که در ما وجود دارد نادیده گرفت. تشمداز معنوی فعلی ممکن است خللق را کاملا پر نکند، اما میتید آینده معنویت را در آنچه امروز رخ می دهدد پیش بینی کنید. مردم در کنار آموز های مزاحب سازمان یافته ابراه وجود می کنند. آنها احساس آمادگی می تا تجربیتی را بیازمایند که نسل های پیشین آن را انکار یا محکوم کردند. آنها می‌دانند که معنویت رودخانه‌ای پهناوره است که از قرن‌ها پیش در جریان است. آنها احساس می‌کنند که در یک پویش انسانی با شکوه مشارکت دارند. آنها معتقدند که تکامل آگاهی واقعی است و ارزش ادامه دادند دارد. آنها بر این باورند که می‌توانند چشمندازی والا و با شکوه بیا با مطابق آن آغاز به زندگی کنند این نکته ها خرد را به عنوان تجربه شخصی نشان می دهند نه کلماتی در کتاب هرچند متن مقدس باشد معنویت کنونی تعداد زیادی از مردم را در بر میگیرد که طعم تعالی را در لحظاتی چشیده اند که حجاب نفس فرو می ریزد و واقعیت بدون دخالت نفس حافظه و شرطی شدن قدیمی پدیدار می شود از دوران کودکی زنانی را به یاد می که در خانه مادر در دهلی جمع می شدند و اغلب با ساز ارغنون و آوای بلند خانواده و دوستان برای ستایش خداوند از کلام شاعران عرفانی محبوبی چون کبیر و میرابای بهره می گرفتند عبیات عجونگر ناپترین اشتیاق است که میتوان تصفر کرد چنانکه میرابای میسراید مرا به جایی ببر که کس نتواند رفت جایی که مرگ میهراست و قوها از بهر بازی در برکه آکنده از عشق فرود میآیند آنجا که مؤمنان صادقانه در پیشگاه پروردگار گرد هم میآیند امروز پس از گذشت قرن ها جویندگانی که انسان با آنها ملاقات می کند بسیار متفاوتند. دانش آموزان و تمرین کنندگان یوگا، مراقب کنندگان از هر رشته طرفداران روانشناسی یونگ که در دهه پنجاه بزرگ شدند، آزاد اندیشان و هیپی های دهه شست، پیروان معلمانی مانند جی کریشنا مورتی، و غورهایی مانند پاراماهانسا یوگاناندا و حتی تعاسفیستها متدینان در ادیان سازمان یافته نور و ایمان خود را شاتم می کنند خیمه بزرگی است هر چند نشانه ها و علامت ها امیدوار کننده هستند رمزگشایی این حرکت متنوع گاهی دشوار است دستاوردهای معنویت در دنیا پرآشوب کجاست ؟ به نظر نمی رسد که نفوز زیادی به افکار سیاسی یا اجتماعی ارتودکس وجود داشته باشد. اما به عنوان جنبشی مردمی معنویت شخصی قدرتمند است. ما آن را به وضوح در آرمانگرائی پایان ناپذیر میلیون ها نفر می که یا با جذابیت خرد عشق برزی می کنند یا جرفتر در آن قوت بر می شوند. راه خرد، هستی بی زمان، هموار گشوده است. سادقانه بگویم، جایگزینی برای اشتیاق معنوی ما نمی بینم. بنابراین هر میزان که چشمانداز معنوی در سی سال آینده تغییر کند، در این لحظه جستجوی شخصی و مسیر درونی عملی ترین است که ما داریم و شایسته است که در شرایط خاص خود بدون برچسب بررسی شود. در حین تعمل در این بخش پایانی کتاب جان عاشق را مرور کردم. کتاب ترجمه اشعار که از روی علاقه به مولانا، کبیر و میروای مرا به نوشتن سوغ داد. یوگا در دانش خود نیرومند است، اما شعر برای قلب نقم سرائی می کند. خرد نیازی به نمایش ظاهری ندارد. زیرا هیچ چیز در ظاهر حادث نمی شود. عشق حقیقی و ناب زمانی تجربه می شود که ما به ساحتی تغییر ناپذیر فراتر از همه گه جهانها، محبتها یا رنجها برویم. آینده توهمی است که وقتی ذهن خاصگاه بیزمان خود را از دست می دهد متولد می شود. در آن پرتو بانگ بیزمانی مسیر خرد را پدیدار می کند. مولانا مثل همیشه آن را بازیبایی بی نظیری بازگو می کند. عشق اکنون مهربانی می کند. جان جان امروز جانی می کند. در شعاع آفتاب معرفت ذره ذره قیبدانی می کند کیمیا یا کیمیا سازه است عشق خاک را گنج معانی می کند گاه درها می گشاید بر فلک گه خرد را نردبانی می کند به همه کسانی که به ثروت بیکران yan